داستان شو هاروم مرد خندان در سال 1928 که 9 سال داشتم با احساس روحیه یگانگی یکی از اعضای سازمانی بودم به اسم باشگاه کمانچی. هر روز بعد از ظهر رئیس در ساعت 3 ما 25 کومونچی را جلوی در خروجی مدرسه ملی پسرانه خیابان 109 نزدیک خیابان آمستردام شماره 165 می کرد. آن وقت ما با مشت و لگد به جان هم میافتادیم تا هر کدام زودتر سوار اتوبوس قرازه و صد دستگشته رئیس بشویم. و رئیس مطابق قرارداد مالی که با پدر و مادرهای ما بسته بود، ما را به پارک مرکزی می برد. بعد تا غروب اگر هوا مساعد بود، کما بیش بسته به فصل فوتبال اروپایی آمریکایی یا بیسبال بازی می کردیم. بعد از ظهرهای بارانی رئیس بیردخور ما را به موزه تاریخ طبیعی یا موزه هنری متروپولیتن میبرد شنبهها و روزهای تعطیل ملی رئیس صبح زود ما را جلوی آپارتمانهایمان در جاهای مختلف سوار اتوبوس قرازه خود می کرد و از منحتن به زمینهای نسبتا وسیع و غیر محصور پارک واکورتلند یا پالی سیدز می برد. اگر حوث یک ورزش درست و حسابی به سر ما میزد میرفتیم وانکورتند که زمین های بازیش اندازه قانونی داشت و توی تیم مقابل از کالسکی بچه و پیرزنهای هافافووی عصاب دست خبری نبود. اگر عشق اردو زدن به دلهای های ما میافتاد میزدیم می رفتیم پالی سیدز و با شرایط بدوی زندگی می کردیم. یادم میآید یک روز شنبه جایی توی قطعه زمین بایر میان تابلوی لینیت و محوطه انتهای غربی پل جورج واشنگتن گم شدم اما خودم را نباختم فقط زیر سایه باشکوه یک تابلوی تبلیغاتی قول پیکر گرفتم نشستم و با اینکه اشک توی چشمهایم بود برای اینکه سرم گرم باشد ظرف ناهارم را باز کردم چون اندک اطمینانی داشتم که رئیس پیدایم می‌کند رئیس همیشه ما را پیدا می‌کرد رئیس در ساعتهای فراغت خود دور از ما کمانچی ها، جان گتساتسکی اهل استاتن آیلند بود. جوانی بود 22 ساله معدب بی انداز خجالتی که توی دانشگاه نیویورک حقوق میخواند و روی هم رفته شخصیتی فراموش نشدنی بود. من سعی نمی کنم همه کارهای چشمگیر و خوبیهای او را در اینجا جمع کنم. همینقدر در اینجا میآورم که او عضو گروه پیشاهنگ اقاب و ستاری فوتبال سال 1923 آمریکا بود و معروف بود که از طرف تیم بیسبال نیویورک جاینتس با حسرت تمام دعوت شده بود تا مربیگری تیم را بر عهده بگیرد او توی تمام مسابقات جنجالی ما داور خونسرد و منصفی بود استاد آتش درست کردن و خاموش کردن آتش بود و در کار کمک های اولیه خبره و دلسوز بود تک تک ما از کوچکترین یک که به زن گرفته تا بزرگترین دوستش می‌داشتیم و به او احترام میگذاشتیم. قد و شکل رئیس در 1928 هنوز به روشنی در ذهنم مانده است. اگر میشد به آرزوها جامعه عمل پوشید ما کامانچی در یک چشم هم زدن قد رئیس را به قد قول می رسندیم. اما چه میشد کرد؟ رئیس آدم کوتاه قدی بود که قدش به یک و پنج و نجنج سانتیمتر می رسید نه بیشتر مویش آبی تیره میزد پیشانی کوتاهی داشت دماغش بزرگ و گوشتالود بود و طول بالا تنش با پاهایش هم اندازه بود. شانههاییش که توی نیمتن چرمی رو میزد می باریک افتاده بود. با وجود اینها در آن زمان رئیس به نظر من خوشکگلی هنرپیشههایی مثل باک جونزو کن مینارد و, و تام میکس را یک جا داشت